ژن خودخواه فصل سوم بخش دوم منظور از واژه ژن که در عنوان این کتاب آمده یک سیسترون نیست بلکه چیز دقیق تری از آن است شاید این تعریف مذاق همه خوش نیاید، ولی ما تعریفی از ژن ندادیم که مورد قبول همکان باشد حتی اگر داشتیم اینطور نبود که نشود آن را رد کرد ما میتوانیم توانیم را آن که منظور ما من را برآورده کنن تعریف کنیم به شرطی که این کار روشن و بی ابهام باشد تعریف زیر را که من به کار میبرم از ج. سه ویلیامز گرفتم ژن عبارت است از آن بخش از مواد کروموزومی که بالقوه طی نسل های متعدد آنقدر دوام دارد که به عنوان واحد انتخاب طویعی عمل کند به زبان فصل قبل بگوییم ژن همدازازی است که امانت زیادی در نسخه برداری دارد. امانت در نسخه برداری به عبارت دیگر مندگاری به صورت نسخه است که من آن را فقط به صورت مندگاری کوتاه می کنم. این تعریف نیاز به کمی توجه دارد. در هر تعریفی که از جن داشته باشیم باید آن را قطعی از یک کروموزوم بدانیم. سوال این است که بزرگی آن قطعه چه اندازه باشد؟ چه مقدار از طول آن نوار کاغذی؟ توالی حروف رمز مجاوب یکدیگر را روی آن نوار کاغذی در نظر بگیرید این توالی را یک واحد ژن بنامید ممکن است فقط توالی ده حرف پشت سر هم درون یک سیسترون باشد شاید توالی هشت سیسترون باشد ممکن است از وسط یک سیسترون شروع و همانجا تمام شود هر واحد ژنی با واحدهای ژنی دیگر همپوشانی خواهد داشت شامل واحدهای کوچکتر میشود و بخشی از یک واحد بزرگتر را میسازد. مهم نیست به چه درازه یا کوتاهی باشد برای هدف بحث حاضر چیزی است که ما آن را واحد ژنی مینامیم. فقط مقداری از طول کروموزوم است و از نظر فیزیکی به هیچ وجه تفاوتی با بقیه آن کروموزوم ندارد حالا به نقطه اصلی میرسیم. هرچی یک واحد ژنی طول کمتری داشته باشد، احتمال بیشتر بودن طول عمرش در طی نهستا بیشتر است. مخصوصا، کمتر این احتمال وجود دارد که با چلیپایگی شکسته شود. فرض کنید، هر بار که یک اسپرم یا تخمک با تقسیم میتوزی ساخته می شود. احتمال دارد در یک کروموزوم کامل یک بار چلیپایگی رخ دهد و این تقاطع و تبادل ممکن است در هر جای طول کروموزوم صورت گیرد. اگر یک واحد ژنی دراز عملا نصف طول یک کروموزوم را در نظر بگیریم، احتمال اینکه در هر میوز قطع شود 50 درصد است. اما اگر طول واحد ژنی مورد نظر ما فقط 100 طول آن کروموزوم باشد، فقط یک درصد احتمال قطع و تبادل آن در هر تقسیم میوزی وجود دارد در این صورت می توانیم انتظار داشته باشیم آن واحد ژنی در عبور از تعداد بیشتری از نسل‌های زادگان آن فرد دوام بیاورد حتی می شود انتظار داشت گروهی که شامل چند سیسترون مجاوره هم است قبل از اینکه با چلیپایگی شکست شود چندین نسل زندگی کند برای راحتی متوسط عمر یک واحد ژنی را به نسل بیان می‌کنند که می توان آن را به سال نیز حساب کرد اگر ما تمام یک کروموزوم را به عنوان یک واحد ژنی در نظر بگیریم طول عمر آن فقط یک نسل خواهد بود مثلا کروموزوم 8t را که باید از پدرتان به شما ارث رسیده باشد در نظر بگیرید کمی قبل از اینکه نطفه شما بسته شود این کروموزوم در یکی از بیزه های پدرتان تولید شده و تا قبل از آن هرگز در طول تاریخ جهان وجود نداشته است این کروموزوم طی فرایند جابجایی میتوز با کنار هم قرار گرفتن قطعه هایی از کروموزوم های مادربزرگ پدری و قطعه هایی از کروموزوم پدر بزرگ پدری شما تشکیل شده درون یک اسپرم خاص قرار گرفته و کاملا منحصر به فرد است آن اسپرم البته اگر شما دو قلو غیر همسان نباشی از میلیونها شناورهایی بوده که در یکی از های مادرتان لنگر انداخته است و به این دلیل شما وجود دارید این واحد ژنی مرز نظر یعنی کروموزوم 8 در کنار بقیه مواد ژنی موجود در بدن شما شروع به تکثیر خودش می‌کند اما وقتی نوبت دار شدن شما می‌رسد یعنی شما تخمک یا اسپرم تولید می‌کنید این کروموزوم شکسته می‌شود ذراتی از آن با ذراتی از کروموزوم شماره 8 ب مادری شما جابجا جا می شود در هر سلول جنسی یک کروموزوم شماره 8 جدید پیدا می شود که شاید از قبلی بهتر یا بدتر باشد ولی با مانع شدن از یک تصادف غیر محتمل چیز کاملا متفاوت و منحصر به فردی است طول زندگی هر کروموزوم فقط یک نسل است طول زندگی یک واحد ژنی کوچکتر. مثلا یک صدام طول کروموزوم هشت الف آدم چقدر است این واحدم از پدر به شما به ارث رسیده اما به احتمال زیاد در اصل در او تشکیل نشده است بر اساس استدلال قبل، به احتمال 99 درصد او آن را به همان صورت از یکی از دو والد خود دریافت کرده است فرض کنید از مادرش گرفته باشد یعنی از مادر بزرگ پدری شما باز 99 درصد احتمال دارد که او همان را از یکی از والدین خود گرفته باشد به همین ترتیب اگر رد اجداد یک واحد ژنی کوچک را به اندازه کافی دنبال کنیم به تولید کننده آن می دسیم. بالاخره باید زمانی درون بیزی یا تخمدان یکی از اجدادتان درست شده باشد بگذارید مفهوم خاصی را که از درست شدن در نظر دارم توضیح دهم هر چه زیر واحدهایی که یک واحد ژنی مورد نظر را می‌سازند کوچکتر باشند احتمال اینکه آن واحد ژنی عمر طولانی‌تری داشته باشد بیشتر است واحد ژنی ما در لحظه خاصی از زمان درست شده یعنی قبل از آن لحظه این آرایش خاصی که زیر واحد های آن دارند و هویت آن واحد را تشکیل می‌دهد هرگز وجود نداشته است لحظه درست شدن آن ممکن است همین اواخر بوده باشد مثلا در یکی از پدر بزرگ یا مادر بزرگ های شما اما اگر یک واحد ژنی بسیار ریز مورد نظر ما باشد شاید در یک نیای بسیار دورتر مثلا در یک جاندار بوزین مانند قبل از انسان درست شده باشد علاوه این، یک واحد ژنی کوچک درون شما در آینده هم ممکن است به همان اندازه عمر کند و بدون تغییر از مسیر عبور کند که از میان نسلهای متوالی زادگان شما میگذرد ولی فراموش نکنید مسیری که زادگان یک فرد طی کنند، یک مسیر منشعب شونده است نه یک خط راست هر کدام از اجداد شما که یک قطعه کوتاه خاص از کروموزوم هشت الف شما را درست کرده باشد چه خانم بوده باشد چه آقا علاوه بر شما زادگان دیگری هم داشته است. ممکن است یکی از واحدهای های جنی شما در نوه اموی پدرتان هم باشد ممکن است در من، در نخص وزیر ما، در سگه شما هم آن واحد باشد زیرا اگر به اندازه کافی به عقب برگردیم همه ما اجداد مشترک داریم همین واحد کوچک ممکن است چندین بار جداگانه به طور تصادفی درست شده باشد در صورتی که واحد کوچک باشد این رخ دا چندان غیر محتمل نیست اما این احتمال وجود ندارد که همه کروموزوم های حتی یکی از منصوبین نزدیکتان کاملا مانند کروموزوم های شما باشد هرچی یک واحد ژنی کوچکتر باشد احتمال اینکه در آن با فرد دیگری شریک باشیم بیشتر می شود احتمال اینکه در جهان چندین بار به صورت یک نسخه پیدا شده باشد بیشتر است اینکه با تقاطع و تبادل واحدهایی از قبل موجود به طور اتفاقی کنار هم قرار گیرند شیوه معمول تشکیل واحدهای ژنی جدید است شیوه دیگر که از نظر تکامل بسیار مهم ولی بسیار نادر است جهش نقطه‌ای است جهش نقطه‌ای اشتباهی است که با چاپ بد یک حرف در کتاب رخ می‌دهد اشتباه نادری است اما بازه است هرچه طول یک واحد ژنی بیشتر باشد. احتمال اینکه با یک جهش در نقطه ای در امتداد طولش تغییری در آن حاصل شود بیشتر است. یک نوع اشتباه نادر دیگر وارونگی است که نتایج دراز مدت آن قابل ملاحظه است. یک تک کروموزوم خود را از هر دو سر جدا کرده سر و ته کند و دوباره به همان جا وصل می شود. با استفاده از ریاس قبل می شود گفت در این حالت لازم است آن صفحه ها دوباره شماره گذاری شوند گاهی قطعه ای از کروموزوم ها فقط سر و ته نمی شوند بلکه به جای دیگری از آن کروموزوم می چسبند در این وضعیت یعنی از یک کتاب وارد کتاب دیگری شده اند این اشتباه گرچه ممکن است فاجعه آمیز باشد از این نظر مهم است که گاهی با اسمشود قطعه هایی از مواد ژنی کنار هم قرار گیرند که با هم همکاری بهتری دارند شاید دو سیسترون که فقط در صورتی که کنار هم باشند اثر خوبی دارند به نهوی مکملند یا یکدیگر را تقویت میکنند با وارونگی کنار هم واقع شوند آنگاه انتخاب طبیعی آن واحد ژنی را که به این صورت شکل گرفته ترجیح میدهد و تعدادش را در میان جمعیت های آتی زیاد میکند این امکان وجود دارد که جنهای مرکب طی گذشت سالها به این ترتیب آرایششان تغییر کرده یا ویرای شده باشند. یکی از شست رفته ترین نمونه های این پدیده را به نام تقلید میشناسیم. بعضی پروانه ها تعم بدی دارند. رنگ آنها معمولا درخشان و چشمگیر است، و پرنده ها از روی نشانه های هشدار دهنده ای آنها میفهمند که نزدیکشان نروند. آن وقت گونه دیگر پروانه که بدتعم نیستند از این وضعیت سود میبرند. آنها از پروانه های بدطعم تقلید می کنند. از نظر شکل و رنگ مثل بد ها زاده می شوند البته نه از نظر مزه اغلب طبیعت شناسان و همچنین پرنده ها را گول میزنند پرنده ای که یکبار بار تعم یکی از پروانه واقعا واقعاً بدتعم را چشیده باشد، دیگر به هیچ پروانه که با آن شکل باشد، از جمله پروانه های مقلد نزدیک نمی شود و به این ترتیب ژن تقلید در انتخاب ترجیح داده می شود. به این شکل تقلید بست پیدا می کند. بسیار مختلفی از پروانه های بدتعم وجود دارد و اینطور نیست که همه شبیه هم باشند. یک مقلد نمی تواند به همه آنها شبیه شود باید خودش را به گونه خاص بدتعم شبیه کند در کل هر گونه مقلد خاص در تقلید یک گونه بدتعم خاص تخصص دارد اما گونه های تقلیدگری وجود دارند که کارشان بسیار عجیب است بعضی افراد آن گونه از یک گونه بدتعم تقلید می کنند افراد دیگر از گونه بدتعم دیگر هر فردی که بین این دو گروه باشد یعنی بخواهد از هر دو تقلید کند خیلی زود خورده می شود و چنین موجود بینابینی اصلا زاده نمی شود. درست همونطور که یک فرد مذکر یا معنیس است یک پروانه مقلد هم باید از این یا از آن گونه تقلید کند. مثلا یک پروانه از گونه A تقلید می کند و از گونه B. به نظر می‌رسد فقط یک ژن در تعیین اینکه از گونه A تقلید شود یا از گونه B نقش داشته باشد اما چگونه تنها یک ژن می‌تواند همه جنبه های چندگانه را که تقلید می‌شود رنگ، شکل، طرح خال و حالت پرواز تعیین کند پاسخ این است که اگر ژن را به مفهوم سیسترون در نظر بگیریم احتمالا نمی تواند اما با ویرایش خودکار و ای که حاصل وارونگی و دیگر باز های اتفاقی مواد ژنی است دسته بزرگی از ژنها که قبلاً پراکنده بوده کنار هم می شوند و روی یک کروموزوم نشینند رفتار کل این مجموعه مانند رفتار یک ژن است در واقع اکنون طبق که جن محسوب می شود و آن یک مجموعه دیگر است. یک مجموعه شامل سیسترون هایی است که به تقلید از گونه ای مربوط می شوند، در مجموعه دیگر به گونه بی مربوط می شوند. احتمال اینکه با چلی پایگی در چنین مجموعه تقاطع و تبادل رخدهت بسیار کم است و هرگز در طبیعت یک پروانی بین بین دیده نشده است. اما، گاهی در میان تعدادی زیادی پروانه که در آزمایشگاه به عمل می‌آورند ظاهر شده‌اند منظور من از ژن یک واحد ژنی بسیار کوچک است که توانسته نزدهای زیادی را پشت سر بگذارد و به صورت نسخه‌های فراوانی تکثیر شود این تعریف خشک و بدون نتاف نیست بلکه یک تعریف نسویی است مثل تعریف بزرگ و پیر که نسبی هرچه احتمال جدا شدن قطعهای از طول یک کروموزوم بیشتر باشد احتمال اینکه بشود روی آن نام ژن گذاشت کمتر است البته در مفهومی که من از ژن در نظر دارم قاعدتاً سیسترون شرایط این تعریف را دارد اما واحدهای بزرگتر از آن هم همین همینطورند یک دوجین سیسترون روی یک کروموزوم ممکن است آنقدر به هم نزدیک باشند که از نظر ما یک واحد ژنی پر اوم را تشکیل دهند مورد گروه های تقلیدگر نمونه خوبی است وقتی سیسترونها از بدن خارج و وارد بدن دیگر میشوند همان زمان که سوار بر اسپرم یا تخمک شده و راهی نسل جدید میشوند ممکن است در آن کشتی کوچکی که هستند همسایههای نزدیک سفرهای قبل خود را ملاقات کنند همسفران قدیمی که ضمن سفرهای پر ماجرا در بدنهای اجداد دور همراهشان بودند سیسترون‌های مجاور روی یک کرومزوم گروه همبستهی را تشکیل می دهند که وقتی زمان جدایی میوزی می رسد دیگر بعید است بتوانند با هم سواری کشتی بشوند. اگر دقیق می باید اسم این کتاب را نه سیسترون خودخواه و نه کروموزوم خودخواه می‌گذاشتیم، بلکه باید آن را قطعه بزرگ تا تاحدی خودخواه و قطعه کوچک کروموزوم خودخواه تر می اما از چنین عنوانی مردم معمولا کوششن نمی آید. بنابراین با تعریف جن با عنوان قطعه کوچکی از کروموزوم که بلقوه در نسلهای زیادی زنده میماند نام این کتاب را ژن خودخواه می گذارم. اکنون به نقطه ای برگشتیم که در پایان فصل و یکم ترکش کردیم. در آنجا دیدیم از هر موجودی که بتواند یک واحد انتخاب طبیعی به شما آید، انتظار می که خودخواهی داشته باشد. دیدیم که بعضی ها گونه را به عنوان واحد انتخاب طبیعی در نظر می گیرن. در حالی که کسانی دیگر جمعیت ها یا گروه های درون گونه را و عده دیگر افراد آن جمعیت را همونطور که قبلا هم گفتم من ترجیح می دهم ژن را واحد اصلی انتخاب طبیعی و بنابراین واحد اصلی خودخواهی بدم. کار من تا اینجا این بوده است که ژن را به صورتی تحریف کنم که ناگزیر حق با من باشد انتخاب طبیعی در کلیترین شکل خود به معنی تفاوت و میزان بقا در موجودات است. بعضی موجودات میمانند و بعضی میمیرند. اما برای اینکه این مرگ گزینشی اثر روی جهان داشته باشد، وجود یک شرط اضافی ضروری است. هر موجود باید به صورت نسخه های متعدد وجود داشته باشد و دست کم بعضی از آنها به صورت نسخه باید بالقوه بتوانند در مدتی که از نظر تکامل با اهمیت است، زنده بمانند. واحد های ریز جن این ویژگی را دارند. افراد، گروهها و گونه ها چنین نیستند. دستاورد بزرگ گریگوری مندل نشان داد که واحدهای های وراستی را در عمل میتوان مانند ذرات جداگانه‌ای غیر قابل تقسیم در نظر گرفت. ولی حالا می‌دریم که موضوع به این سادگی هم نیست. حتی گاهی یک سیسترون تقسیم می‌شود و اینطور نیست که هر دو ژنی که روی یک کروموزومند کاملا از هم مستقل باشند. من سعی کردم ژن را به صورت واحدی تعریف کنم که تا حد زیادی با آن ذره غیر قابل تقسیم آرمانی نزدیک باشد. ژن غیر قابل تقسیم نیست ولی به ندرت تقسیم می شود این ژن خاص در بدن یک فرد دقیقا وجود دارد یا ندارد ژن از پدر بزرگ یا مادر بزرگا با عبور مستقیم از میان نسل که بین آنها هستند بدون اینکه با ژن های دیگر ادغام شود بدون تغییر به نوه ها می رسد اگر ژن مدام با یکدیگر آمیخته می شدند انتخاب طبیعی با آن صورتی که ما می شناسیم هرگز ممکن نبود از غذا این موضوع در زمان حیات داروین اثبات شده بود و توجه داروین را بسیار به خود جلب کرده بود زیرا در آن روزا تصور بر این بود که وراست یک فرایند آمیخته است در آن زمان کشف مندل منتشر شده بود و میتوانست به داد داروین برسد اما افسوس که هیچگاه داروین از آن باخبر نشد ظاهرا تا سال بعد از مرگ داروین و مندل کسی آن را نفهمیده بود. شاید خود مندل هم به اهمیت کشفی که کرده بود پی نبرد زیرا در خیر این صورت راجب آن برای داروین مینوشت نوشت. جنبه دیگر وراستی بودن جن این است که دوچار پیری نمی شود و احتمال مردن آن در یک میلیون سالگی بیشتر از زمانی یکصد سالگیش نیست. ژن در گذر از نسل ها از بدنی به بدن دیگر می پرد و بدن ها را یکی بعد از دیگری متناسب با خواص های خود تنظیم میکند و آنها را یکی بعد از دیگری قبل از اینکه با پیری و مرگ رو به نابودی روند ترک میکند ژن همیشه زنده اند یا بهتر بگوییم موجوداتی ژنتیکی هستند که حتی الامکان استحقاق داشتن چنین صفتی را دارند. ما که ماشین های بقای فردی هستیم در این جهان می توانیم انتظار چند ده عمر را داشته باشیم اما انتظار عمر ژنها در این جهان بسیار زیادتر از آن است که با ده سنجیده شود و سر به هزاران و میلیون ها سال می زند. در گونه هایی که تولید مثل در آنها جنسی است هر فرد یک واحد ژنی فوق بزرگ و فوق علت موقتی است موقتی تر از آن که بتوان آن را یک واحد با ارزش در انتخاب طبیعی در نظر گرفت گروهی که از جمع شدن این افراد تشکیل می شوند واحد بزرگتری است از دیدگاه ژنی افراد گروه ها مثل ابر در آسمان یا طوفان ذرات قبار در بیابانند که کنار هم آمدن یا انبوه شدگی موقت دارند تجمع آنها در زمانهایی مربوط به تکامل دوام ندارد جمعیت ها ممکن است مدتی دوام داشته باشند ولی مدام با جمعیت های دیگر می آمیزند و به این ترتیب هویت خود را از دست می دهند به علاوه از درون نیز تحت تاثیر تغییرات تکاملی واقع می شوند حوییت جمعیت به اندازی که بتوان آن را یک واحد انتخاب طبیعی بشمارند مستقل نیست و ثبات و یک پارچگی لازم را ندارد تا در برابر جمعیت دیگری ترجیح داده شود وقتی بدن شخص وجود دارد به نظر مستقل می رسد. اما افسوس که این حسی طولانی نیست هر فردی منحصر به فرد است تکامل نمیتواند از بین موجوداتی که از هر کدام یک نمونه وجود دارد انتخابی صورت دهد تودید مثل جنسی تکثیر نیست درست همانطور که جمعیتی با جمعیتهای دیگر می آمیزد های آینده یک فرد آمیزهای از او و شریک جنسیش هستند بچه های شما فقط نیمی از شمايان؟ نبه هایتان فقط یک چهارم بعد از چند نسل در تعداد زیاد زادگان شما حد اکثر بخش بسیار کوچکی از شما فقط چند ژن وجود دارد حتی اگر همه آنها نام شما را بر خود داشته باشند افراد چیزهای ماندگاری نیستند موقتیاند. هند ها هم زیر و زبر می شوند و به فراموشی سپرده می شوند مثل یک دست ورق که بعد از هر دور بازی بر میخورد اما خود ورقها بعد از بازی باقی می ماند. جنها با چریپایگی از بین نمیروند. فقط شریخ را عوض می و پیش میروند. حتما پیش میروند. کارشان همین است. آنها هم تا ساز و ما ماشین های بقای آنها هستیم. وقتی خدمت مورد نظر را انجام دادیم ما را دور می اندازند. اما جنها اهل زمانهای بسیار طولانی اند، هم. همیشگی هم. جنها مثل الماس همیشگی هم. البته نه کاملا مثل الماس. الماس به صورت بلوری که از الگوهای ثابتی از اتم تشکیل شده، ماندگار است. ماندگاری مولکول های دی ای از این نوع نیست. زندگی فیزیکی هر مولکول دی ای بسیار کوتاه است، شاید حدود چند ماه. هرچه باشد بیشتر از طول یک عمر نیست. اما از جنبه نظری یک مولکول دی این ای می به صورت نسخه های از خودش 100 میلیون سال عمر کند علاوه بر این درست مانند همتاسازهای نخستین که در سوپ آغازی بودند ممکن است نسخه های یک ژن خاص در سراسر سر جهان منتشر شود فقط با این تفاوت که در روایت های جدید همه به صورت منظم و مرتبی درون بدن ماشین های بقا بسته بندی شده اند تعکید من بر ویژگی نامیرایی بالقوهٔ ها به صورت نسخهای متعدد است در بعضی موارد میتوان از تعریف ژن به عنوان یک تکسیسترون استفاده کرد اما در مورد نظریهای مربوط به تکامل باید آن را بست داد میزان بست بستگی به هدف مورد نظر دارد قصد ما پیبردن به واحد عملی انتخاب طبیعی است در این راه باید ابتدا ویژگی‌های یک انتخاب طبیعی کارآمد را مشخص کنیم که با استفاده از اصطلاحات فصل قبل عبارتند از ماندگاری، زایایی و امانت در نسخه برداری. بعد ژن را فقط به عنوان بزرگترین موجودی که حداقل بالقوه این ویژگی‌ها را دارد تعریف می‌کنیم. ژن یک همتاساز ماندگار است که به صورت نسخه‌های تکثیر شده فراوان وجود دارد. البته ماندگاری آن ابدی نیست. الماس هم واقعا فنا ناپذیر نیست و حتی یک سیسترون هم ممکن است با چلیپاییگی دوتا شود. در تعریف ژن را ای از کروموزوم می‌دانیم به اندازه کوتاه که بالقوه به قدر کافی عمر می‌کند تا نقش یک واحد با ارزش را در انتخاب طبیعی داشته باشد. دقیقا منظور از به کافی چقدر است؟ این سوال پاسخ شص رفته ای ندارد. بستگی به این دارد که فشار انتخاب طبیعی چه اندازه باشد ؟ یعنی بسته به این است که احتمال از بین رفتن یک واحد ژنی بعد نسبت به آلل خوب آن چقدر باشد. این قضیه به جزئیات کمی مربوط می شود که در نمونه های مختلف با هم فرق دارند. بزرگترین واحد عملی در انتخاب طبیعی، ژن معمولا در جایی روی یک خط میزان قرار دارد، که در یک سر آن سیسترون و در سر دیگرش کروموزوم واقع است این نامیرایی بلقوه ژن است که باعث می شود آن را نامزده مناسبی برای واحد اصلی انتخاب طبیعی در نظر بگیریم حالا وقت آن است که روی واژه بلقوه تأکید کنیم هر جن ممکن است میلیون ها سال عمر کند اما عمر بسیاری از ژن جدید به یک نسل هم نمی رسد زنده ماندن تعداد اندکی از جنهای جدید تا حدی به دلیل خوش اقبالیشان است ولی عمدتا به این دلیل است که آنی را که لازم است دارند یعنی در ساختن ماشین بقا ماهرند آنها روی رشد جنین در بدنهای متوالی که در آنها زندگی می کنند تحصیر می گذارن. به صورت که احتمال زندهماندن و تولید مثل آن بدن را نسبت به بدنی که تحت تأثیر ژن رقیب یا است کمی بیشتر می کنند برای مثالی که ژن خوب ممکن است با ایجاد پاهای بلند در بدن‌های که خود آن است بقای خود را تضمین کند به این ترتیب که آن بدن بهتر بتواند در مقابل شکارگرها فرار کند این یک مورد خاص است نه یک نمونه کلی برای موش داشتن پای بلند مزاحمت است به جای اینکه خود را درگیری این جزیات کنیم بهتر است بپرسیم. آیا هیچ ویژگی کلی وجود دارد که انتظار آن را در همه ژن خوب یعنی دراز عمر داشته باشیم. در مقابل چه ویژگی هایی باعث می شود که بر یک ژن بر سیسب بد کوتاه عمر را بزنیم. ممکن است صدادی از این ویژیک کلی داشته باشیم ولی یکی از آنها به طور خاص به این کتاب مربوط می شود. در سطح ژن، باید ایسارگری را بد و خودخواهی را خوب به شمار آورد این پیامد ناپذیر تعریفی است که از ایسارگری و خودخواهی داشتیم جنها برای بقا مستقیما با آللهایشان رقابت میکنند چون آللها در خزانه ژنی و در گرفتن جایگاه روی کروموزوم در نسلهای آینده رقیب هایند. در آن خزانه احتمالی زنده ماندن هر جنی بیشتر خواهد شد که به بهای زیر پا گذاشتن تمایل آلل رقیب رفتارش احتمال بقای خود را در آینده افسایش دهد. این توضیح واضحات است، ولی بنابرای تعریف آن جن واحد اصلی خودخواهی محسوب می شود. پیام اصلی این فصل همین بود. من از چند مسئله و فرض پنهان سریع گذاشتم. هرقدر ها در سفری که از میان ها می کنند آزاد و مستقل باشند در کنترلی که بر روست جنین دارند آزادی و استقلال چندانی ندارند آنها هم با یکدیگر و هم با محیط زیست خود همکاری و تعامل پیچیده و غیرقابل تفکیکی دارند عبارتی مانند ژن بلندی پا یا ژن رفتار ایسارگرانه در کلام چیز راحتی است اما مهم این است که به معنای واقعی آنها پی ببریم. هیچ ژنی نیست که دست تنها پا بسازد. چه بلند چه کوتاه. ساختن پا حاصل کار دست جمعی چندین ژن است. تأثیر محیط بیرون را هم باید لحاظ کرد. اصلا در واقع پا از غذا ساخته می شود. اما شاید ژنی وجود داشته باشد که اگر دیگر شرایط یکسان باشد نسبت به عمل کرده آلل خود در این مورد پا را بلند تر کند. برای قیاس، تأثیر یک کود مثلا نیترات را بر روی رشد گندم در نظر بگیریم. همه می‌دانیم گیاه گندم با کود نیترات نسبت به شرایطی که این کود موجود نباشد بیشتر رشد می کنند. ولی هیچ کس آنقدر نادان نیست که بگوید خود نیترات گندم را می سازد. بعدی که دانه، خاک، آفتاب، آب و مواد معدنی مختلف همه لازمند. اما اگر همه این عوامل را ثابت در نظر بگیریم و حتی هر کدام در محدوده ای بتواند کم و زیاد شوند افزودن نیترات باعث می شود گیاه رشد بیشتر کند به این ترتیب یک ژن خاص در رشد روینده ها نقش دارد رشد مراحل ابتدایی را شبکه در هم تنیده ای از روابط بسیار پیچیده کنترل کند که سر درآوردن از آن آسان نیست هیچ عامل ژنی یا محیطی را نمی نمیتوان تنها علت بخشی از یک کودک در نظر گرفت. هر بخش بدن کودک را که در نظر بگیریم نزدیک به بی نهایت علت قبلی در آن نقش دارد. اما تفاوت بین یک کودک با کودک دیگر مثلا تفاوت در طول پا را می توان به آسانی ردیابی کرد تا به یک یا چند تفاوت ساده پیشین در محیط زیست یا در ها رسید. همین تفاوت ها هستند که در رقابت برای بقا مهم است و این تفاوتها تحت کنترل ژنها هستند که در تکامل نقش دارند